تدابیر جنگی سربازان چنگیز خان چنان به خوبی تعلیم دیده بودند که می توانستن فرمانها را فوراً به صورت یک واحد همه اجرا کنند. چنگیز همواره می خواست سربازانش در جنگ پیش قدم شوند بنابراین جنگ جویان او همیشه حمله می کردن حتی هنگامی که در حال دفاع از غلم رو به خود بودند. انزبات سربازان مغول همراه با تدابیر جنگی برتر آنها هموار باعث پیروزی بر دشمن می شد. چنگیز دوست داشت از عامل غافلگیری در نورد استفاده کند و در لشکرکشی هایش به ندرت نخشه های قبلی را تکرار میکرد. این عمر پی بردن به تدابیر او را برای دشمن دشوار می ساخت و سربازان او تظاهر به عقب نشینی میکردند. ولی یک بار بیخبر بر اسبان تازه نفس سوار می شدند، حمله می و از اصبهای خسته دشمن پیشی می گرفتند. غالباً سوار نظام سباک اسلحه دشمن را در جبه سردرگم می کرد، در حالی که واحدهای دیگر مغولان از همه طرف برای اصبهای در آوردن دشمن نزدیک می شدند. کشیک عامل دیگری که ارتش مغول را چنان محیب ساخت، واحد مرکزی پیروان وفادار بی قید و شرطی بود که اوامر خان را هر چه بود انجام می‌دادند. چنگیز این واحد را به عنوان لشکر محافظان شخصی خود یا کشیک به کار گرفت. کشیک اگرچه ابتدا در زمان انتخاب او به سمت خان در سال 1206 میلادی گروهی شامل هفتاد محافظ هنگام روز و هشتاد محافظ هنگام شب بود اما به صورت نیروی ده هزار نفر توسعه یافته بود. آنها مسئول محافظت از خان و پیک ها و جنگجویان جویان دست چین شده برای معموریت های خاص بودند. به کشیک امتیازات خاصی اعتامی شد. آنها از رتبهی حتی بالاتر از رتبه فرماندهان نظامی برخوردار بودند. بعضی از مردان این گروه از میان برادران و پسران فرماندهان نظامی انتخاب می‌شدند. اینان نقشی گروگان گونه داشتند، زیرا اگر هر یک از فرماندهان نظامی نسبت به چنگیز نافرمانی می‌کرد، به سبب اعمال خلاف او می‌توانستند برادر یا پسر او در لشکر محافظان را مجازات کنند. به این ترتیب چنگیز اطمینان یافت که می تواند وفاداری فرماندهان و کشیک خود را به دست آورد چون افراد کشیک ثابت کرده بودند که سربازانی کاملا وفادارند بعدها حاکمان امپراتوری از میان آنان انتخاب شدند به علاوه چنگیز خان برای ایجاد تحول اساسی در ارتش تغییرات مهمی را در نظام اجتماعی مغلان پدید آورد این تغییرات با نیت ایجاد صلح و نظم در جامعه و در هر یک از خاندان ها و توایف صورت گرفت. تدوین قانون نامه چنگیز کمی بعد از انتخاب شدن به مقام خانی قانون نامه‌ای موسوم به یاسا تدوین کرد. یاسا به مجموعه از سوابق دعاوی گزارش هایی از آرای غذایی که میشد از آنها به عنوان سوابق حقوقی استفاده کرد تبدیل شد. که در ابتدا از آن به مسابه فهرستی از قوانین به ارس از چنگیز استفاده می شد. این قانون نامه به مبنای رسمی امپراتوری مغل تبدیل شد. مبنایی که در بردارنده خرد و آینده نگری چنگیز بود. چنگیز خواست تا همه احکام، دستورات کلی و فرمانها برای اداره امپراتوری نوشته شود و خط ایغوری را برگزید که نایمان ها از آن استفاده می و آن را با زبان مغولی تطبیق داد چنگیز با نوشتن قوانین و تعلیم خط آیغوری به حکام خود در این اندیشه بود که یاسا دوام بیشتری پیدا کند او به کسانی که از قوانین یاسا منحرف شوند چون این داد اگر بزرگان فرماندهان نظامی امیران از نسل های متعدد فرمانده که در آینده متولد خواهند شد از قانون به طور دقیق پیروی نکنند قدرت دولت در هم خواهد شکست و به پایان خواهد رسید. این مجموعه قوانین هرچند دائما توسعه می یافت اما اصول اساسی آن در سال ۱۶ میلادی وصل گردید. یاسا بخشی از عرف مغلان از ازقبیل رسومی بر ضد دروغگویی یا مداخله در اختلافات دیگران را به صورت قانون در آورد ممنوعیت های مذهبی نیز به صورت قانون درآمد مرگ کیفر رفتاری بود که خدایان مغل را میاززرد، ماننده ادرار کردن در نهر یا رودخانه، سرقت حیوان یک کوچنشین نیز مستجب مجازات مرگ بود، زیرا دزد برای بقای خود فرد دیگری را قربانی میکرد. اما بیشتر قوانین یاسا مربوط بود به. اوضاع پدید آمده به واسطه تبدیل جامعه مغل از حالت کوچ به یک امپراتوری. قوانین معکدی مختص تشکیلات نظامی گردید. در صورت حضور مردان در جنگ زنان در پشت جبهه ملزم به انجام تمام وظایف شوهران خود بودند. در میدان جنگ اگر سربازی کمان یا ترکشی را که سربازی دیگر تیه جنگ به زمین انداخته بود نمی توانست از زمین بردارد یا اگر از خدمت فرار میکرد یا به جاسوسی برای دشمن می پرداخت حکم قتلش صادر می شدد. برای بعضی اعمال مانند دزدی جریمههایی تیین شد و مجازات جدی جرائم اعدام بود. فرمانهای رسمی ثبت شده به خط عیغوری می بایست با اثر مهر دولتی تایید می شد. تقسیم اداری امپراتوری به های یا قلمروهای حکومتی جداگانه سرانجام به پدید آمدن یاساهای جداگانی متناسب با اوضاع اجتماعی و سیاسی مختلف داخل امپراتوری منجر شد. برای مثال، قانون سربازگیری در نواحی مختلف متفاوت بود. قانون‌نامه‌های جدید به تدریج به ایجاد ترس در جامعه کمک کرد و موارد دزدی، قتل راهزنی و زنای محسنه که در دوران جوانی تموچین بسیار پرشمار بود سرانجام کاهش یافت با وجود این قبایل قدرت را به آسانی به حکومت خان واگذار نکردند اده زیادی از دخالت حکومت در حقوق سنتی رؤسای قبایل خشم بین شدند اما آنها یا از دست زدن به اقدام نظامی می یا ناتوان از سازماندهی مقاومتی مؤثر در برابر جامعه جدید بودند تدارک رفاه مردم یکی از مبانی قدرت چندگیز خان حسن شهرتش بود او نسبت به ملت خود سخاوتمند و مهربان بود و اینها در نظر کوچنشینان صفاتی ارزشمند برای یک رهبر به شمار میآد چنگیز همچنان تعهد ای خود می که شاهد بحرمندی همه اعضای جامعه مغول از سیاست های خود باشد. برای مثال او مالیاتی برای ارتش در نظر گرفت تا برای کسانی که به علت زخمی شدن یا فقر قادر به تأمین مایحتاج خود نبودند رمه، نمد و پنیر تهیه شده از شیر گوزفند فراهم آورد. او حتی برای فرزندان سربازانی که در جنگ کشته می شدند یتیم خانه ای ایجاد کرد چنگیز در نامهی به چانچه اون حکیم تاؤگرا درباره روابط اجتماعی مقالان توضیح داد آسمان و زمین از تجمل گرای در چین بیزار شده اند. من اهل شمال هستم که زیستگاه مردم بی تمدن است من همان لباسی را می که گاف چرانان و عصب چرانان می پوشند و همان غذایی را می خورم که آنها می خورند. ما به طور یکسان قربانی می کنیم و در ثروت هم شریکیم. من از ملت مانند کودکی نوزاد مراقبت می کنم و به سربازانم چنان علاقه مندم که گویی برادران من هستند. برخلاف ساختار اجتماعی بسیار پر اختلاف چین با انواع الغاب پرتفصیل برای رهبران در جامعه مغل اختلافات کمی در میان مردم وجود داشت. در حالی که چینیان نام را طبق رتبه اجتماعی به صورتی متفاوت عدامی کردند، چنگیز اصرار داشت که نام او همانند نام همه ادا شود. سیاست های چنگیز برای او احترام به بار آورد و سربازانش را وفادار و مشتاق به پیروی از فرمان های او نگاه داشت. زیرا آنها این وفاداری و پیروی را به صلاح خود و ملت خود می دانستند. آغاز فتوحات خارجی بیشتر تاریخ نویسان هم عقیده اند که چنگیز به محض غلبه بر همه مقاومت های داخلی توجهش را به خارج و به این نکته که سرور سراسر دشت پهناور شود معطوف کرد. مغلان قلم روحای مردم اسکان یافته در شرق و غرب خود مانند بخش هایی از چین و خاور میانه را تنها دارای اهمیتی هاشیهی به شمار می آبردن. این نواهی می توانستن خراج و ثروت فرا هم آبرند. با این حال سپا های مغول پس از تسخیر و غارت این نواهی و خرو از آنجا تنها اسکلت ععالی را برای جمعآوری خراج در پشت سر خود باقی میگذاشتند. مغولان مادامی که بخشی از ثروت این کشورها را دریافت می کردندند رضایت میدادند که نقش فعالی در امور آنها ایفا نکنند. نخستین توسعه قلم رو مغولان در سال۹ میلادی صورت گرفت در این سال اویغور های غرب آسیای میانه پیمان خود را با امپراتوری بودایی غراختایی که در آسیای میانه نزدیک مرز ایران قرار داشت گسیختند و به چنگیز خان ابراز وفاداری کردند. دولت اویغور به خوبی از سوی چنگیز پذیرفته شد. این دولت خراج میپرداخت و در سراسر دوران حیات چنگیز خود مختار باقی ماند. اطاعت اویگورها سابقه ای را ایجاد کرد که به موجب آن دولتهایی که به خاست خود تسلیم امپراتوری مغل می شدند اجازه می آفتند که تابعان خود مختار باشند در سال 1209 میلادی مغولان متوجه پادشاهی خیخیا در غرب چین کنونی شدند پادشاهی که تحت حکومت قوم تبتی زبان تنگوت بود خیخیا به خاطر پارچه های زیبای آن شهرت داشت و همچنین بر واحه واقع در امتداد جاده عبریش هم مسلط بود و از کاروان های مغل با جراح هنگفتی مطالبه می کرد. گمان می روید که برخی از دشمنان قبیله یه چنگیز برای گریز از حاکمیت او به خیخیا گریخته باشند. همچنین ممکن است ترس از تلافی سازمان یافته از سوی این دشمنان مغولان را به حمله به خیخیا تحریق کرده باشد. مقلان پس از عبور از صحرای گوبی برای درگیر شدن با مدافعان آن امپراتوری در مواجهه با نیروی عظیم دشمن تظاهر به عقب نشینی کردند. هنگامی که تنگوت ها صفوف خود را گسیختند و به تعقیب آنها پرداختند سپاه مغول بازگشت و تعقیب کنندگان از هم گسیخته را از پای درآورد. آورد. رئیس تنگوت ها را اسیر کردند ولی جان او را بخشیدند. و اجازه دادن مادامی که در صورت خاست مغالان حاضر به فرستادن سرباز برای آنان باشد، شاه بماند. شاه تنگوت دخترش را به همسری چنگیز در آورد و خیخیا به صورت دولتی تابع درآمد آمد. کشی به چین شماری در شرق خیخیا پادشاهی قوم جورچن قرار داشت که سلسلی خود را چین به معنی تلایی میخاندند. قوم جورچند بر چین شمالی حکومت می کردند. این قوم که برای بازداشتن کوچنشینان از حمله همواره به آنها باج داده بودند در ابتدای صده سیزده میلادی دوچار مشکلات سیاسی و اقتصادی بودند. چینیان بومی نیز از حکومت قوم جورچن خشبین بودند و در ارتش خیانت شایه بود. چنگیز بر اساس اطلاعات خود و اطلاعاتی که از بازرگانان و کارمندان ترک دیار کرده سلسلی چین کسب کرده بود به این نتیجه رسید که حکومت سلسلی چین ناتوان است او همچنین می دانست که ارتش نیرومند 600 هزار نفره سلسلی چین در جنوب درگیر جنگ با سلسلی سنگ است در سال 1211 میلادی چنگیز که در آن زمان تقریبا 44 سال داشت در رأس سپاهی هفتاد هزار نفره آزم قلم روی سلسلی چین شد. سپاه چنگیز پس از نبردهای متعدد در سال 1214 میلادی شانگ تو پای تخت سلسلی چین را که حساری به ارتفاع دوازده متر داشت محاصره کرد. مغلان آماده بودند تا با استفاده از منجنیقهای قوی سنگهایی پنجاه کیلویی به طرف دیوارها و دروازه های شهر پرتاب کنند. اما امپراتور سلسله چین به مغولان طلا و نقره هدیه کرد و حاضر شد به چنگیز در صورت بازگرداندن سربازانش شاه توختی از خاندان چین را هدیه دهد. خان پذیرفت اما یک سال بعد که شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه سلسله چین در حال سازماندهی دوباری نیروهای خود برای حمله به مغولان است، سپاه چنگیز پایتخت سلسله چین را تسخیر و اهالی آنجا را بیرحمانه از دم تیر گذراند سواران مغل با تاختن در میان خیابانها تیرهای شعلور به طرف خانه چوبی پرتاب کردند. تمامی محله ها سوختند و با خاک یکسان شدند و سفیر شاه رهبر امپراتوری اسلامی در آسیای غربی به عنوان شاهدی عینی شهر داد که پس از اتمام خوندیزی ها و آتش سوزی ها خیابان ها از چربی اکساد انسان چرب و پوشیده از نهش بود. مغولان همراه با گنجینه های انبوه سلسلی چین آنجا را ترک کردند و یک سردار مغول را برای حفظ منافع خود در پشت سر باقی گذاشتند. سالها بعد مسافرانی که به شانگ تو سفر می کردند شهر می دادند که آنچه تپی سفید در شهر به نظر می در حقیقت پشته‌ای بود از آستخان‌های شهروندان شانگتو. ایجاد وحشت به عنوان تدبیری جنگی. حمله مقالان به قلم قلمرو سلسله چین به منزله قتل عام یک ملت بود. جمعیت چین شمالی که در سال 1195 میلادی 50 میلیون نفر بود در سال 1226 میلادی به 9 میلیون نفر رسید. ویران کردن شانگتو به قصد هشدار دادن به دیگران انجام گرفت کوریه ها با اطلاع یافتن از سرنوشت این شهر بلا فاصله فرستادگانی را نزد مقلان اعظام و پیشنهاد کردند که در مقابل پرداخت خراجی هنگفت به مقلان آنها کوریه ها را به حال خود بگذارند تسلیم شدن کوریه ها ثابت کرد که تدبیر ایجاد وحشت از سوی چنگیز کارساز است مقالان چون نیروی انسانی کافی نداشتند تا در همه قلمروهایی که تسخیر می کردن پادگانهای را مستقر کنند در مواقع عدم حضور نظامی برای تأمین وفاداری مقلوبان متکی به ترس و خاطر آنان بودند. ابن الاسیر وقای نگار عرب شهر داده است. در کشورهایی که هنوز مورد حمله آنها قرار نگرفته بود، همگان شب را با ترس از اینکه ممکن است آنها در درانجانی ظاهر شوند سفری می کردند طبق یک نظریه چنگیز می تمامی شهرها را ویران کند تا احالی نتوانند به دشمنان او یاری برسانند با این حال با وجود زیاد بودن شمار کشتگان در شهرهای ویران شده مقلان به کشتار مطلق همه شهروندان نمی پرداختند هرکس که تخصصی منحصر به فرد داشت از قبیل ستار شناسان، آهنگران، بافندگان، پزشکان، کاتبان و گوشبازان به همراه همسر و فرزندانش به مغولستان انتقال داده می شد. چنگیز خان می که می از دانش این افراد برای کمک به پیشرفت امپراتوری خود استفاده کند. به علاوه غالباً جان زنان، سندکران و دیگران بخشیده می شود. زیرا مغلان برای کمک در حرکت دادن بارها و سلاح های مربوط به محاصره به افرادی نیاز داشتند همچنین میشد آنها را فروخت یا به عنوان برد بخشید یا از تخصصشان استفاده کرد شهرهایی که بدون جنگیدن تسلیم می از ویرانی نجات می آفتند. در مقابل این شهرها باید به مغلان خراج سالانه و سرباز می دادند. بسیاری از فرمان روایان ترجیح می با مغلان نجنگند و تسلیم آنها شوند. به این ترتیب سپاه مغول که در سال 1258 میلادی بغداد را تاراج کرد شامل سربازانی به خدمت گرفته شده از ایران، گرجستان و ارمنستان بود امپراتوری خارعزمشاه سلطان محمد خارعزمشاه با شنیدن خبر سقوط شانگتو تو علاقمند شد با چنگیز خان گفتگو کند امپراتوری اسلامی سلطان شامل ازبکستان و بخش های از ایران کنونی بود شهرهای با شکوه بخارا و سمرغند واقع در مسیر جاده ابریشم تحت سلطه او بودند او فرمان روای قدرتمندی بود و در صدت برامده بود چین را تسکیر کند که سفیرش پیروزی مغلان و بیرحمی هایشان در شانگتورا به اطلاعش رساند. به محض اینکه اخبار تسخیر چین به دست مغلان به سلطان رسید بازرگانان بخارا آزم دیدار از قلم روح مغلان گردیدند چنگیز خان یشم سبز، طلا، آج و رداهای تهیه شده از پشم شطران سفید به آنها داد تا به عنوان هدیه به نزد سلطان ببرند آنها همچنین نامه ای از چنگیز خان برای او آوردند با این عبارات. من این هدایه را برای تو می فرستم. من از قدرت و از وسط امپراتوری تو آگاهم و به تو به عنوان عزیزترین پسرم احترام می گذارم. تا جایی که به تو مربوطه است باید بدانی که من چین و کشورهای ترک شمال آنجا را تسخیر کردم. کشور من منبعه بیپایانی از سربازان و معدنی از نقره است و من نیازی به سرزمین های دیگر ندارم. این معتقدم که ما در تشویق تجارت میان اطباع خود نفعی برابر داریم. بعضی تاریخ نویسان معتقدند که چنگیز خان می کوشید با فریب خارعزمشاه شاه این نشان دهد که تمایولی برای حمله به غرم او ندارد تا به سپاهیان خود فرصت دهد. پس از غلبه بر سلسلی چین تجدید قوا کنند و برای تسخیر امپراتوری خارعصم شاهیان آماده شوند. سایر تاریخ نویسان تردید دارند در اینکه که چنگیز که سربازانش در نقاط بیش از حد گستردهی پراکنده بودند در زمانی که نام را فرستاد میتوانست به تحریزی جنگ با سلطان بپردازد. همچنین سلطان نیز مغلان را به منظلی خطری به شمار می و غصد نداشت اجازه دهد ا به صورت دولتی تابع آنان در سلطان پیشنهاد صلح چنگیز را پذیرفت، اما در خفا برای جنگ آماده می شد. در سال 1218 میلادی، کاروانی متشکل از 450 بازرگان مسلمان برای آغاز رسمی توافق تجاری میان دو امپراتوری از غلم روی مغلستان مرز شرقی امپراتوری خارعزم شاه گردید. اما حاکم غلمروه شرقی سلطان ادعا کرد که بازرگانان جاسوسند حاکم مال و تجاری آنها را ضبط کرد و همه را به قتل رساند چون این اتهامی را میشد به اغلب کاروانهای خارجی وارد آورد بازرگانان به کررات به عنوان جاسوس عمل می‌کردند و اطلاعات با ارزشی را در مورد اوضاع سیاسی آمادگی سربازن و روحیه ای توده مردم در کشورهای دورده است با خود می آوردند. چنگیز خان مانند بسیاری از رهبران آن دوران، از بازرگانان برای انتشار تبلیغات در مورد خود و نقل داستانهایی در باره ارتش شکست ناپذیرش استفاده می کرد. با وجود این تاریخ نویسان معتقدند که حاکم بنابه فرمانی از سوی سلطان برای برنگیختن خشم چنگیز خان دست به این عمل زد. دعوت به جنگ جنگیز خان برای مطالبه غرامت این خسارت جانی و مالی سه نماینده به دربار سلطان فرستاد آنها از سلطان درخواست کردند که حاکم را به مقالان تحویل دهد تا مجازاتش کنند ولی خارعزم شاه امتنا کرد او یکی از فرستادگان خان را کشت و ریش دو فرستادی دیگر را سوزند این عملی در خور نکوهش بود زیرا انتظار می‌رفت با سفیران با نهایت احترام رفتار شود. چنگیزین رفتار را به درستی به دعوت به جنگ تعبیر کرد. چنگیز خان هنگامی که از سرنوشت فرستادگان خود اطلاع یافت، بسیار خشمگین شد. به بالای تپه رفت، سر خود را تراشید و به مدت سه روز به درگاه آسمان آبی ابدی نیایش کرد و گفت: های جان این فتنه را مبتدی نبودم. قوت انتقام بخش و هنگامی که پایین آمد برای آغاز حجوم آماده بود